پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است گردنده فلک ز بهر کاری بوده است سینهار قدم به خاک آهسته نهی، کان مردمک چشم نگاری بوده است بتخانه بود و کعبه خانه بندگی است ناقوس زدن ترانه بندگی است و نار و کلیسا و تسبیح و صلیب حقا که همه نشانه بندگی است بلو نشان بودنی ها بودست، پیوسته قلم زنیک و بد آسوده است اندر تقدیر هر چه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما است با هر بد و نیک راز نتوانم گفت، کوتست و خنم دراز نتوانم گفت، تالی دارم که شهر نتوانم داد، رازی دارم که باز نتوانم گفت.